Hay sees the home. سروكلهٔ شهرو از میان درگاهی کپر پیدا شد بچههایش تو کپر خواب بودند هر چکهای که پایین میافتاد رو دلش سنگینی میکرد نور ماه درونش را میسوخت از ماه بدش میآمد چند بار پا شده بود آمده بود دم کپر های و گومتی و تنگسیرها را نگاه کرده بود و باز رفته بود تو کپر شبه آدمهایی که برابر که پرش نشسته بودند به او دلغشه میدادند میدانست سیرها برای پشتیبانی او آمده بودند اما دلش نمیخواست آنجا باشند دلش میخواست هیچ کس آنجا نباشد خدایا خیلی از شب میره پس چرا نیومدش؟ از صبح تا حالا سرب نیست شده چرا هیچکه که ازش خبر نداره؟ خدایا؟ چرا ایش که هیچ نمیگه؟ چرا نه از مردش و نه از زنده اش خبری نیست؟ دیگه درم از این سامون کنده شده. کاشکی بیاد زودی از اینجا بریم گورمونه گم کنیم. یعنی میشه که زنده باشه؟ پیش از این خود را زن خوشبختی میدانست. محمد برای شوهر خوبی بود. زنهای دیگر غپته اش را میخوردند. محمد باعث سرفرازی او بود. همه احترام محمد را داشتند هرچند ده برای خودش کت خدا داشت اما کت خدای حقیقی محمد بود که هرکس کس کارش گیر پیدا میکرد، اول به سراغ او میآمد محمد زورمند و دلیر بود زیر زور نمیرفت. تو جنگهای های تنگک دوش به دوش ریسلی دلواری با انگلیسی ها جنگیده بود و خود او بود که وقتی ریسلی تیر خورد او را بغل زده بود و از میدان جنگ برده بودش تو نخلستان و رئیس علی سرش تو دامن محمد بود که وسیعت کرد و جان داد. محمد همیشه خودش به مردم کمک می کرد. حالا کار به جایی کشیده بود که اینها آمده بودند به محمد کمک کنند. همه اینها تو سر شهرون میگذشت و نگرانی سوزندهی دلش را می‌خورد. دل شتاب تپ تکان خورد و صدای سوم چند اسب گردنها را به دو سوی جاده بوشهر برگرداند و تفنگچی کازرونی از جا پرید و هر دو تفنگ‌هایشان را برداشتند و راست به سوی جاده ایستادند شش سوار که همشان های حکومتی بودند شتابان از راه رسیدند و جلوی کپر شهر از اسب پیاده شدند تنگسیرها همانطور که نشسته بودند پیچ و تاب میخوردند. چند پچ پچه کوتا میانشان گذشت و باز خاموش نشستند و از پیچ و تاب افتادند. خود نایب همراه توفنگچی ها بود. بلند و ترکب و جوان بود و سبیل دمی سیاهی داشت. یک مزر لخت تو دستش بود. چکمه زرد انگلیسی پاش بود. کلاه پوست بره بین قاب که شیر و خورشید میان پشمهایش فرو رفته بود سرش بود و بلوز و شلوار تنش بود توفنگچی ها همشان شکل هم بودند زلف داشتند، سبیل داشتند کلاهشان نشان داشت و مچپیچ و ملکی پاهاشان بود کسی رو ندیدید؟ نایب با شتاب از دو توفنگچیک آنجا بودند پرسید نه هیچ که. توفنگچی جواب دادند با هم یکی گفت نه و دیگری گفت هیچ که پدار سخته مادر غهبه خودش رو انداخت دریا و زد به آب یه توفنگچی هم که میخواست بگیردش زخمی کرد حالا نمیدونم است یا زنده ناشش رو نتونستیم تو آب پیدا کنیم نایب گفت و بعد برگشت به طرف کپر و به شهر و نگاه و باز پرسید خونش اینجاست این خونش و اونم زنشه. تفنگچی کازرونی جواب داد و بوی تون در دهن نایب تو دماغش خورده بود و تو دلش گفت خب میدونستم. لابوتالام از ترس پنج تا تفنگچی دنبالت انداختی اومدی هواخوری. نایب اسپش را به تفنگچی داد و خودش رفت به طرف شهرو. لغ تو دستش بود. نزدیک شهرو که رسید با پرخاش گفت این به در سوخته تو بود که هفت نفر را به خاک و خون کشید و به خیال خودش در رفت؟ اگه زنده یا مردش رو پیدا نکنم سرخاب سفیداب میمالم به صورتم بلند گفت و همه تنگ سیرها شنیدند و باز توشان جنب و جوش افتاد شهرو نگاه سیاهش را به چهره نایب دوخت و لبهاش را گاز گرفت پیشانیش عرق نشست و خون تو صورتش جمع شد بعد بیان که چیزی بگوید برگشت تو کپر. نایب رفت دنبالش تو کپر. تو کپر تاریک بود. فقط یک تخت ماختاب از در افتاده بود کف کپر که نوران یک نور خاکستری مردهی تو کپر ول داده بود. بچه ها هم خواب بودند. نایب کمی دم در ایستاد تا چشمش به نور خاکستری مردهی کپر خوب گرفت. سپس پیش رفت تا نزدیک شهر رو رسید. شهرو رفته بود بالای سر بچایش ایستاده بود حالت عقابی را داشت که طولانش های خزیده باشد سفیدی چشمانش تو مرده نور کلبه کالا به چشم نایب دیگر خاکستری نبود میترخشید. نایب پهلوی شهرو رسیده بود سرش را برد نزدیک و خندان گفت میدونم چرا اومدی تو کفر اول نفهمیدم تو به این خوشگلی هستی حیفه نیست زن یه همچه آدم بی سر و پایی باشی خیلی ناغلایی میدونم چرا اومدی تو کفر حالا زود باش بکن آن وقت با دست چپش که توش مذر نبود محکم مچ دست شهرو را گرفت و سرش را برد نزدیک شهرو را ماچ کند شهرو چون پلنگی پرید و چنگ انداخت و با ناخن تیز و نیرومندش صورت او را چنگ زد و درید و نعره کشید جهنم شکرره هروم چه میخوای اینجا آمدی تو خونه مردم؟ نره سوزنده شهر رو تو گوش ها و بیابان پیچید و چه از خواب پریدند و راست تو جاشان نشستند و شهرو نشست یکی یکی آنها را بغل گرفت و ناز و نوازش کرد و باز تو جاشان خواباند تمام تنگسیرها که گویی صدای نعره شیر ماده شنیده بودند با هم از جا برخاستند آشفته بودند و جنب جوش توشان افتاده بود توفنگچی ها به هم نگاه می کردند. در همین هنگام بود که سرکله نایب از تو درگاهی کومه پیدا شد که دستش را رو صورتش گذاشته بود توفنگچی ها که نزدیک او بودند صورت او را زودتر از تنگ دیدند چنگی که شهرو به صورت او زده بود از پیشانیش بالای چشم چپش بود که گونه و چانش را دریده بود و خون ازش جاری بود کتخدا هم که گویی مویش را آتش زده بودند از راه رسید و یک راست رفت پیش توفنگچی ها. نایب دستمالی از جیبش بیرون آورد و روشیارهای خونین صورتش گذاشته بود. دستمال خونی بود. توفنگچی ها به هم نگاه می کردند. هنوز تنگ سیرها سر جاشانی ایستاده بودند. نایب با مزرش به سوی تنگ اشاره کرد و با خشم به کت خدا گفت اینا تا این وقت شب اینجا چه کار دارن؟ چرا متفرقشون نمیکنی؟ کت خدا آرام گفت اینا کاری ندارن هر شب کارشون همینه میان دوره هم جمع میشن نایف فریاد زد من میگم زود بفرستشون برن خونهاشون گمشن خدا جواب داد سرکار عرض من رو نشنفدین به اینا کاری نداشته باشین تا کارتون بگذره شما که برای دشمن تراشی اینجا نیومدین من حقی ندارم به اینا بگم از اینجا برن. اینا خونه و زندگیشون اینجاست کجا برن؟ بعد یکی از هایی که با خود نایب آمده بود و او هم تنگ سیر بود به نایب گفت: "کت خدا درست حرف می‌کنه. اینا بلا نسبت خیلی کله خران. یک و دو باشون فایده نداره." بعد کت خدا مثل اینکه زخم صورت نایب را همان دم دیده باشد برای اینکه حرف تو حرف بیاورد پرسید: "توراتتون زخم شده؟" خدای نخواسته با کسی گلاویز شدی؟ نایب مثل برج زهرمار جواب داد نه چیزه نیست رو پیش سینه شتک خون نشسته بود وقتی حرف میزد سرش زیر بود و به کت خدا نگاه نمی کرد. به هیچ کس نگاه نمی کرد. صورتش میسوخت دلش می خواست با دو دستش شهرو را خفه کرده بود کت خدا فوری پرسید تو بندر پیداش نگردین؟ نایب گفت نه پرید تو دریا و غیبش سد گفتیم شاید اومده باشه اینجا اینجا هم که نیست جونور عجیبیه مثل گورکن میمونه کد خدا با شادی درونی گفت شما همون بهتره که تو بندر بگردین اینجا نمیادش دباز خیلی کوچیکه. میدونه اگه اینجا برگرده دهن به دهن خبرش به شما میرسه بعد لبخندی زد و افسود هرچند همونطور که فرمایش کردین مثل گورکن میمونه وقتی تفنگش کولش باشه دریا و خشکی براش فرقی نمیکنه این از اون آدمایه که میتونه تا دبی یا شارجه با شنا بره خاطرتون جمع باشه که دیگه اینجا پاشه نمی سره. در این هنگام پر و حیولا یادمی از پشت پیشهای خشکیده دیواره یک پر تو چشم کت خدا خورد و لرزی تو تنش خرید مگه کلش خرابه که تو این همه توفنگی آفتابی شده آخه برای چه آمده؟ این چشماش خون گرفته تا ده دوازده نفر دیگه به خون نکشه دستوردار نیست گمونم اومده بزن و بچه هاش سر بزنه آخه فایدهش چیه؟ خودش بهتر میدونه خدا کنه آشوبی بفا نشه خدا آقابت کارو خیر کنه کت خدا پیش خودش فکر میکرد و نگاهش را رو از روی سیاهی محمد دزدیده. و به چهره خم شده نایب که پشتش به محمد بود انداخت و دو گام عقب رفت. ناگهان نعره ی هوا را ترکاند. اگر از جون خودتون سیر نشدین پفنگاتونو بندازین زمین؟ من با ایش کدوم شما دشمنی ندارم، همتون برادرای منید. چه اونایی که و چه اونایی که شهر شهرو از کپر آمد بیرون، نیامد بیرون، هل خورد بیرون. هیچ وقت محمد را به آن زمختی ندیده بود. به نظرش آمد شوهرش قد کشیده و مثل قول گنده شده بود. تفنگش تو دستش بود. صورت او را خوب نمیتوانست ببیند. زلفهایش پریشان بود. اما خود محمد بود. شهرونه میدانست چه کار کند. دلش میخواست بانگ بزند و بگوید توفنگشی های حکومتی براش کمین کردند. اما محمد روبروی آنها ایستاده بود و حرف زده بود. تنگسیرها به هم نگاه می کردند. همه ایستاده بودند ناگهان نایه بغب برگشت و حیکل غول مانند محمد را چند متری خود در پناه کپر دید دهتیرش را به طرف او نشانه رفت هنوز یک دستش با دستمال رو زخم صورتش بود و فقط با چشم راستش نشانه روی کرده بود و گفت اگه تسلیم بشی برا خودت بهتره و دردم دم روماش زور آورد و صدای مرگبار گلوله تو شب سود کشید محمد خودش را پشت کپر پر بود برزخ بود تفنگ او در نرفته بود او هم همان وقت تیر خالی کرده بود فشنگ آب دیده بود حالا دیگر دیده نمیشد. نایب خیال کرد محمد پشت کپر افتاده به طرف کپر پر هجوم آورد گلوله نایب که به پیشهای خوشگیده که خورده بود کپر را آتش زده بود و از گوشش داشت میسوخت نایب به طرف آتش حجوم آورد و سر توفنگی ها داد زد با من بیاین و همچنان که می پیش خودش خیال کرد حتما زدمش اما هنوز از سوک کپر نگذشته بود که خونداغ تفنگ محمد تو سرش پایین آمد و پیش از آن که بر زمین بشود ده تیر او تو مشت محمد بود که فوری آن را به سوی توفنگی های حکومتی قراول رفت و داد زد بهتون یه دفعه گفتم راحتون بگیریم بریم بندر ندارین خونه بی خودی ریخته بشه تنگسیرها جلو آمده بودند و پشت سر ها آرام ایستاده بودند مثل روح بودند حرکاتشان خود به خود آرام و باهم بود نعش نایب پیش پای محمد افتاده بود محمد از روی آن رد شد و جلوی ها آمد و باز داد زد تفنگاتونو بندازین زمین اگه نندازین یک کدومتون جون سالم از اینجا در نمیبرین منم که کشته بشم از دست اینا خلاصی ندارین بعد با مزرش اشاره به تنگسیرهای خاموش کرد. اول تفنگچی کازرونی تفنگش رو انداخت رو زمین، بعد تفنگچی آذربایجانی و بعد یکی یکی هایی که با نایب آمده بودند. تفنگچی کازرونی آه راحتی از دل کشید. ها به محمد نگاه می کردند الو بیا تفنگا رو جمع کن ببر بری سرا محمد قرید و یکی از جوانان تنگسیر که اسمش الو بود دوید و هفتدانه تفنگ را به چابکی مرغی که از رو زمین دانه ورچید برداشت و برد محمد به او نگاه می کرد و قبلا دیده بود که كه ها فقط تفنگ خالی دارند و ده تیر نداشتند دوباره فریاد زد شهرو حالا بچهها را بیار ده تیر نایب تو دستش بود و دستهایش بغلش آویزان بود شهرو با بچه های است که کپر بیرون آمد دخترش را بغل گرفته بود و پسرک را که هنوز نمی توانست خوب رو پاهاش بند شود دنبال خودش میکشید. محمد چند گام پیش گذاشت و پسرک را مثل یک کیسه جو بلند کرد و زد زیر بغلش اما از زیر چشم توفنگچی ها را میپایید سپس با ده تیرش راه نخلستان را به شهر را نشان داد و گفت تو برو خیلی تند و بیرحم گفت و صورتش را فوری از شهرو برگرداند. شهرو هل خورده بندام بیگانه شوهرش نگاه کرد و مانند آدمی که تو خواب راه برود راه نخلستان را پیش گرفت. محمد هنوز روبروی توفنگچی ها و تنگسیرها ایستاده بود. بود. خدا پهلوش بود و دلش برای نایب شور میزد و سپس راه افتاد و رفت پهلوی نعش نایب و آن را وارسی کرد و گفت بیهوشه، اما گمون نیم نیمجونکی داره، از سرش خون میاد، یکی بره تو کپر اون کوزه آب رو برداره بیاره یک نفر کوزه آب رو از تو کپر محمد برداشت برد پیش کت خدا کت خدا سر نایب را بلند کرد و کوزه آب را به دهنش گذاشت دندان نایب کلید شده بود و تنش رعشه داشت محمد پس پس به سوی نخلستان راه افتاد پشت به نخلستان و روبه توفنگچی ها و تنگ سیر ها پس پس می رفت. موازنه راه رفتنش عوض شده بود. سنگینی بالا به عقب گله شده بود. سینش برآمده بود و نفس نفس می زد. لای کف دستایش که یکی زیر تنه شلوول پسرش مشت شده بود و دیگری که قنداق مزر را می فشرد، زغزغ می کرد و می سوخت، و خون گرم تازه‌ای که روی نازک داغمه کف دست‌هایش را دریده بود رو ماسه ها نور ماه چکه چکه رو ماسه ها زوب می مانند آدمک های صفالی نبی حرکت و مرده رو میخکوب شده بودند فانکی های حکومتی چون کندنده نخل خوشگیده تو زمین ریشه وند کرده بودند و هیکل سنگین و فشرده محمد رو ماسه ها می درزید و پس میرفت. هیچ کس حرف نمیزد. هنگامی که محمد به کرانه نخلستان رسید شهر و دخترش پیدا نبودند. نخلستان آنها را بلعیده بود وزشی در تنگسیرهای خاموش در گرفت و مانند آدمک هایی که کوکشان کرده بودند به سوی محمد راه افتادند. توفنگچی ها سر جاشان ایستاده بودند. تنگسیرها به سفانه ها رسیدند و از آنها گذشتند و به سوی محمد پیش رفتند. میان آنها و توفنگچی فاصله افتاد. هفت توفنگچی حکومتی و, و کالبود نزنده و نمرده نایب پشت سر تنگ سیرها جامانده بودند توفنگچی ها هم بی اختیار پشت سر تنگ راه افتادن به سوی نخلستان و تنها کت خدا بالای سر نایب به جامانده بود ماهتاب رو زمین سیاه و سفید میشد و کج و کوله می و حالا بیابان هم همه پیچیده بود گویی به پای همه آنها وزنهای سنگین بسته شده بود پاها تو رمل فرو می رفت و به دشواری بیرون می و باز تو رمل جا به جا نخلستان آدمها را بلعید و پولکهای شورمزه محتاب رو بستر نخلستان تاریک و روشن می شد. صدای پرپر ها و کبوترهایی که تو دل نخلها پناه برده بودند خاموشی را می کشت. محمد هنوز پس پس می رفت و شهر و دخترش پشت سر او پیش می رفتند. فاصله آنها با تنگ و توفنگچیها کم بود. درخشش پسفوری سطح دریا از پشت نخلستان هویدا هو شد و نرم موجهای کفالود رو ماساهای کرانه می و کالبد سیاه بلم را رو آب می رخصاند. شهرو با کیسهی که تو دستش بود تو بلم رفت و دخترش را بالا کشید یکی از تنگسیرها بند بلم را از نخلی که آن را مهار کرده بود باز کرد و محمد و پسرش تو بلم بودند و شهرو بند را تو بلم کشید و ها و تنگسیرها کنار ساحل بسته بودند و چشمها به بلم دوخته بود و لبها تکان میخورد پارو تو دل آب گوته خورد و بدم یله شد و رخصید و پس رفت و آب شکاف فرداشت و نور ماه لیز خورد و سرهای لرزان تو بدم دور و نزدیک شد و نور ماه پیچ و تاب خورد و آب سیاه شد و سفید شد و دریا جان گرفت و نرم موجها اخم کردند نفس پاروها که زیر آب بند میآمد، سر از آب بیرون می آوردند و نفس تازه می کردند و تو دریا و بیابان و نخلستان و تو گوش محمد و شهر و هم همه بیچی خدا نگهدار I'm